حق نداری نا شوی نورا, سید. نورا میان گرد و خاک و دود در جهتی که خانم علم گفته بود به راه افتاد تکه های سقف هنوز دور تا دورش روی زمین می ریخت. نفس کشیدن و دیدن سخت بود اما نورا به طریقی موفق شده بود حساب تعداد ردیف های را داشته باشد از لام های روی سقف جرقه زیادی روی سرش می‌ریخت. گرد و خاک راه گلویش را بسته بود و کاری میکرد که بخواهد بالا بیاورد. اما حتی در آن فضای مه گرفته و پر گرد و قبار هم میدید که بیشتر کتابها آتش گرفتهاند. در واقع هیچ کدام از قفصه ها کاملا سالم نبودند و حرارت مثل نیروی نامرئی در همه سمت وجود داشت. بعضی از قفصه و کتابها که زودتر از بقیه آتش گرفته بودند حالا چیزی جز تلی از خاکستر نبودند. نورا به محض اینکه به ردیف یازده رسید، تکه بزرگی از سقف رویش افتاد و به زمین چسباندش. در حالی که زیر تکه سنگ گیر افتاده بود، احساس کرد خودنویس از دستش افتاد و دور شد. نخستین تلاشش برای آزاد شدن با شکست روبرو شد. دیگه تموم شد. چه بخام و چه نخام همینجا میمیرم، میمیرم. کتابخانه رو به نابودی بود. چهل و یک دقیقه چهل و دو دقیقه نیمه شب همه چیز تمام شده بود دوباره از این موضوع مطمئن شد همینجا می و تمام زندگی های احتمالیش دور تا دورش می و از بین می رفتند. اما بعد در لحظه کوتاه که گرد و خاک کنار رفت آن را دید درست همانجا روی ردیف یازدهم از آن سمت سومین طبقه از پایین فاصله ای ایجاد شده در میان آتشی که تمام کتاب دیگر طبقه را محسوسااند نمی بمیرم باید بیشتر تلاش میکرد زندگی را میخواست که همیشه فکر کرده بود نمیخواهدش چون درست همانطور که این کتابخانه بخشی از او بود تمام زندگی های دیگرش هم بخشی از ورودش بودند. درست است که تمام احساساتش را در آن زندگیها تجربه نکرده بود اما تواناییش را داشت درست است که آن موقعیت های خاص را از دست داده و نتوانسته بود شناگر المپیک جهانگرد مالک تاکستان ستاریگ راک یخشال شراسی که زمین را نجات می‌دهد، فارغ و تحصیل دانشگاه کمبریج مادر و میلیون ها چیز دیگر بشود اما هنوز هم تمام آن انسان‌ها به نوعی خود نورا بودند همه شال خودش بودند نورا می توانست تمام آن آدم های باشد و این حقیقت برخلاف خلاف آنچه در گذشته فکر می برایش برای انگیز نبود به هیچ وجه الهام بخش بود چون حالا می دانست وقتی بخواهد چه کارهایی از عهدهش برمیآید در زم زندگی هم که سپری کرده بود منطق خودش را داشت برادرش زنده بود ایزی زنده بود و نورا به پسر ای کمک کرده بود که از خلاف دور بماند آنچه در نظر انسان تله به نظر می رسد، در واقع فقط حققی زن است. نورا برای شاد بودن به تاکستان یا غروب آفتاب کالیفرنیا نیاز نداشت. حتی خانه بزرگ و خانواده فوقالعاده هم لازم نداشت. فقط نیاز داشت که بداند پتانسیل رسیدن به خیلی چیزها را دارد. و چقدر هم که پتانسیل داشت، نمی دانست چرا قبلا متوجهش نشده بود. صدای خانم علم را بلندتر از سر و صدای محیط از زیر میز در فاصله دور پشت سرش شنید. ناامید نشو. حق نداری ناامید بشی نورا سید. نورا نمیخواست بمیرد. نمیخواست در هیچ زندگی هم جز زندگی خودش باشد. همان زندگی که پر بود از پیچیدگی و درد سر اما خوب مال خودش بود. یک زندگی پیچیده و پر درد سر اما زیبا. پنجا و دو دقیقه نیمه شب، پنجا و سه دقیقه نیمه شب، زیر سنگ لولید و به آن فشار آورد و نهایت تلاشش را کرد تا سرانجام پس از چند ثانیگ موفق شد روی پاهایش بیستد، ریه از شدت فشاری که به خودش آورده بود میسوختند دست روی زمین کشید و خودنویس را زیر لایه گرد و خاک پیدا کرد، سپس از میان ابر دود به طرف ردیف یازدهم دوید پیدایش کرد تنها کتابی که نمیسوخت هنوز روی قفسه سالم مانده و کاملا سبز بود با رسیدن حرارت به پوستش چهرش را در هم کشید و محتااتان انگشت اشارش را بالای عطف کتاب قلاب کرد و آن را از قفسه بیرون کشید. سپس همان کار همیشگی را کرد کتاب را باز و سعی کرد صفحه اولش را پیدا کند اما تنها مشکل ماجرا این بود که هیچ صفحه اولی وجود نداشت در تمام کتاب حتی یک کلمه هم نوشته نشده و کاملا سفید بود مثل بقیه کتاب کتابها، این کتاب هم کتاب آینده نورا بود اما برخلاف خلاف این کتاب هنوز نوشته نشده بود پس همین بود زندگی خودش زندگی اصلیش کتابی کاملا خالی نورا لحظه‌ای همانجا ایستاد خودنویس قدیمی مدرسهش توی دستش بود دیگر تقریبا یک دقیقه از نیمه شب می‌گذشت بقیه کتاب‌های قفسه زغال شده بودند لامپ آویزان از سقف هم میان گرد و غبار سوسو می‌زد و به زحمت سقف ترک خورده را روشن می‌کرد تکه بزرگی از سقف دور تا دور لامپ که تا حدودی شکل نقشه فرانسه بوده هر لحظه ممکن بود روی نورا بیفتد و کارش را تمام کند. نورا سر خودنویس را برداشت و کتاب باز را روی قفسه های سوخته گذاشت. سقف ناله بلند کرد. خیلی وقت نداشت. شروع به نوشتن کرد. نورا میخواست زنده بماند. وقتی جمله را تمام کرد، یک لحظه منتظر ماند. در کمال ناامیدی متوجه شد، هیچ اتفاقی نمیافتد. یاد حرفی افتاد که خانم علم زمانی زده بود، خواستن کلمه جالبیه، کم بود روشون میده.» بنابراین نورا جمله قبلی را خط زد و دوباره نوشت. لورا تصمیم گرفت زنده بماند. هیچ اتفاقی نیفتاد. لورا دوباره تلاش کرد. نورا آماده بود زندگی کند حتی وقتی زیر کلمه زندگی خط کشید باز هم اتفاقی نیفتاد حالا دیگر همه جا نابود شده و از بین رفته بود سقف داشت پایین میریخت و همه چیز را له و قفسه‌های های کتاب را با خاک یکسان میکرد نورا نگاهش را برگرداند و خانم علم را دید که از زیر میز بیرون آمده و بدون هیچ ترسی ایستاده است بعد هم ناپدید شد و همزمان تقریباً سقف همه جای کتابخانه پایین آمد و آتش ها و قفسه ها و هر چیز دیگری را زیر خود خفه کرد. نورا حالا دیگر هیچ چیز نمیدید. داشت خفه میشد. اما این بخش از کتابخانه هنوز دوام آورده بود. هر لحظه امکان داشت همه چیز نابود بشود. نورا همین را میدانست. را از تلاش برای اندیشیدن درباره چیزی که میخواست بنویسد دست برداشت و در نهایت ناامیدی صرفا نخستین چیزی را نوشت که به ذهنش رسید همان چیزی که همچون قرشی مسکوت و سرکش در وجودش حس میکرد و میتوانست با آن بر تمام نابودی های بیرونی فائق آید تنها حقیقتی که نورا میدانست حقیقتی که حالا به آن افتخار میکرد و از آن راضی بود، حقیقتی که نه فقط با آن کنار آمده بلکه با آغوش باز و ذره ذره شور و انرژی وجودش به استقبال میرفت حقیقتی که نورا عجولانه اما با قلمی محکم و حروفی بزرگ و از دید اول شخص مزارع آن را نوشت حقیقتی که نخستین پیش نیاز هر احتمال دیگری بود حقیقتی که قبلا نفرین به نظر میرسید و حالا موهبت سه کلمه ساده و سرشار از قدرت و احتمالات بسیار و متعدد تمام جهانهای موازی من زنده هستم لحظه ای زمین خشم گینان لرزید و تا آخرین ذره باقی مانده از کتابخانه نیمه شب به گرد و قبار تبدیل شد. بیدار شدن یک دقیقه و بیست و هفت پس از نیمه شب نوراسید با بالا آوردن روی فاش به زندگی برگشت زنده بود، اما به سختی سرفه می‌کرد و خسته بود بدنش کم آب شده بود و میلرزید. به سختی می توانست تکان بخورد حرکتهایش سنگین بودند سرش گیج می‌رفت. سینهاش درد می کرد و سرش حتی بیشتر از سینهش درد داشت به نظر می رسید این بدترین حس موجود در زندگی باشد. اما این زندگی تقییقا همان زندگی بود که نورا می خواست. برخواستن از روی تختش سخت و تقریبا غیرممکن به نظر می رسید. اما میدانست که باید بلند بشود. به طریقی موفق شد بیستد و گوشیش را برداشت. اما انگار زیادی سنگین و لیز بود که بشود آن را در دست گرفت. به همین خاطر روی زمین افتاد و از دید نورا خارج شد نورا با صدایی گرفته گفت کم، کمک کم، کمک و سکندری خوران از اتاق بیرون رفت راه رو مثل کشتی گرفتار طوفان کج و راست میشد. اما نورا بدون بیهوش شدن خودش را به در خروجی رساند بعد هم زنجیر قفل را برداشت و پس از تلاش بسیار موفق شد در را باز کند لطفا کم، کمکم کنین با وجود بیحواسیش متوجه شد هنوز باران میآید. بعد با لباسخواب آقشته به استفراغش بیرون رفت از کنار پلهی گذشت که کمی بیشتر از یک روز پیش اش روی آن ایستاده بود تا خبر مرگ گربش را به او بدهد هیچکس آن اطراف نبود دست کم نراه هیچ کس را نمیدید. بنابراین تلو تلو خوران و باز سرگیجه شدید به طرف خانه ی آقای بنرجی رفت و در نهایت موفق شد زنگ آن را بزند. راگهان نوری در پنجره جلویی خانه درخشید. در باز شد. آقای بنرجی عینک به چشم نداشت و اتمالا به خاطر لباس نورا و همچنین دیر وقت بودن گیت شده بود. خیلی معذرت میخوام آقای بنرجی. کار خیلی ای کردم. بهتر زنگ بزنین. آمبولانس بیاد. وای خدای من. چی شده؟ لطفاً آره الان زی میزنم هم، همین الان سه دقیقه و چهل و هشت گه شب سرانجام آن موقع بود که نورا به خودش اجازه داد به جلو خم شود و با شدتی نسبتاً زیاد روی پادری خانه آقای بنرجی سقود کند آسمان تاریک و تاریک تر می شود سیاهی و کبودی در رقابتاند. اما ستاره ها هنوز برای تو میدرخشند ورای ناامیدی سارتر زمانی نوشت زندگی در ورای نومیدی آغاز می‌شود لورا روی تخت بیمارستان نشسته بود او را به بخش فرستاده بودند قضا خورده بود و حس خیلی بهتری داشت دکترها از نتایج های جسمانی او راضی به نظر می رسیدند ظاهراً دلدردش طبیعی بود نورا سعی کرد با حرفی که اش درباره باری ترمیم دیواری معده در عرض چند روز زده بود دکتر را تحت تأثیر قرار دهد. سپس پرستاری که تخت در دست داشت داخل آمد. روی تختش نشست و شروع کرد به پرسیدن سؤالهای متعدد درباره وضعیت روحی و ذهنیش. نورا به این نتیجه رسید که باید تجربهش از کتاب هانیگ نیمه شب را پیش خود نگه دارد. حد میزد گفتن این حرفها در ارزیابی روان شناسی برایش درد سرساز شود. به احتمال زیاد دانستههایش درباره حقایق جهان های موازی هنوز تحت پوشش بیمه سلامت ملی قرار نداشت. سوال و جواب پرستار تقریبا تا یک ساعت ادامه پیدا کرد. برباره داروهای نورا، مرگ مادرش، وولتز، از دست دادن شغلش، مشکلات مالیش و تشخیص افسردگی موقعیتیش صحبت کردند. پرستار پرسید، قبلا هم سعی کردی بودین چنین کاری کنین؟ توی این زندگی نه. حالا چه احساسی دارین؟ نمیدونم، دیکم عجیبه، اما دیگه نمیخوام بمیرم. پرستار چیزی نوشت. پس از رفتن پرستار نورا از پشت پنجره حرکات آرام درختان در نسیم بدزور و پیش روی ماشین ها را در کمربندی دور دست بدفورد تماشا کرد. جز درخت و ترافیک و معماری معمول ساختمان ها چیزی نمی دید. اما همین به تنهایی همه چیز بود، زندگی، کمی بعد پست‌هایش درباره خودکشی را در شبکه‌های اجتماعی پاک کرد و پس از اندکی احساساتی شدن چیز دیگری به جایشان نوشت. عنوانش را گذاشت: چیزی که یاد گرفتم. به قلم آنکه کسی نیست اما همه کس بوده است. چیزی که یاد گرفتم به قلم آنکه کسی نیست، اما همه کس بوده است. حسرت خوردن برای زندگی‌هایی که تجربهشان نکرده ایم ساده است. گفتن اینکه کاش مهارت‌های متفاوتی به دست آورده بودیم یا به پیشنهادهای دیگری جواب مثبت داده بودیم آسان است. راحت است که آرزو کنیم کاش قبلا بیشتر تلاش می‌کردیم. آنمان را بیشتر دوست می‌داشتیم. در مسائل مالی دقت بیشتری به خرج میدادیم محبوب تر میشدیم در گروه موسیقیمان می ماندیم به استرالیا میرفتیم به پیشنهاد قهوه خوردن با کسی جواب مثبت میدادیم یا بیشتر یوگا کار میکردیم. دلتنگی برای دوستانی که ایم و کارهایی که نکرد و کسی که با او ازدواج نکرد و فرزندی که به دنیا یاوردهم تلاش زیادی نمیخواهد. خیلی سخت نیست که خودمان را از دریچه چشم دیگران ببینیم و آرزو کنیم به همان شکلی بودیم که آنها ما را می‌بینند. حسرت خوردن و تا ابد در حسرت غرق شدن آسان است. مشکل اصلی حسرت زندگی‌هایی نیست که تجربه ایشان ایم. مشکل اصلی خود حسرت است. حسرت است که باعث می‌شود در خود چروکیده و پشمرده شویم. و بهبحث کنیم بزرگترین دشمن خودمان و دیگران هستیم ما نمیدانیم اگر زندگیمان را به شکل دیگری پیش برده بودیم وضعیت بهتر میشد یا بدتر بله زندگی های متفاوت هم وجود دارند اما زندگی ما هم در جریان است و همین جریان زندگی است که باید رویش تمرکز کنیم. مسلمان هرگز نمی توانیم از همه جا دیدن کنیم و همه ی آدم ها را ببینیم و وارد هر ای شویم. اما در هر صورت بیشتر احساساتی که در زندگی های متفاوت خواهیم داشت در همین زندگی هم هست. لازم نیست تمام بازی ها را انجام دهیم تا بفهمیم حس برنده شدن چگونه است. لازم نیست برای درک موسیقی تک تک قطعه های موسیقی دنیا را بشنویم. نیازی نیست انگورهای متنوع تمام تاکستانهای دنیا را مزه کنیم تا گوارایی نوشیدنی را بفهمیم. عشق و خند و ترس و درد عرض رایج تمام دنیا هستند. فقط کافی است چشممان را ببندیم و آهسته نوشیدنی روبرویمان را مزه مزه کنیم. و به صدای موسیقی گوش بدهیم چون درست به اندازه ی تمام زندگی های دیگر در این زندگی هم کاملا ز و به تمام احساسات ممکن دسترسی داریم فقط کافی است خودمان باشیم فقط کافی است زندگی را تجربه کنیم برای همه چیز بودن لازم نیست همه چیز را تجربه کنیم چون همین حالا هم بی پایان هستیم تا زمانی که زنده ایم بی نهایت احتمال متفاوت برای زندگی آینده پیش روی ما نست پس بیایید با آدم هایی که در این زندگی با ما شریکند مهربان باشیم بیایید گهگاهی سر سرمان را بالا بیاوریم چون هر کجا که باشیم آسمان بالای سرمان من بی انتهاست. دیروز من مطمئن بودم که آینده ای ندارم و پذیرش زندگیم به شکل کنونیش برایم غیر ممکن است امروز همان زندگی پرآشوب و شلوغ برایم پر از امید و احتمالات گوناگون به نظر می رسد. قرار است زندگیم ناگهان به طرز معجز آسایی آری از هر گونه درد، ناامیدی، غم دلشکستگی، سختی، تنهایی و افسردگی شود؟ نه آیا می خواهم زندگی کنم؟ بله بله، هزاران بار میگویم بله؟ زندگی کردن در برابر در کردن. چند دقیقه بعد برادرش به دیدنش آمد. پیغام صوتی نورا را دیده و هفت دقیقه پس از نیمه شب با پیامک جوابش را داده بود. حالت خوب چی؟ بعد که بیمارستان با او تماس گرفته بود جو سوار نخستین قطار لندن شده و آمده بود. در سنت سنت پاکراس آخرین شماره مجلگ نشتال جوگرافیک را هم برای نورا خریده بود. در حالی که مجله را روی میز کنار تخت بیمارستان می‌گذاشت، به نورا گفت قدیما خیلی دوستش داشتی. هنوزم دارم. دیدنش حس خوبی داشت. ابروهای کلوفت و لبخند مرددش هنوز تغییری نکرده بودند. کمی متفاوت راه می رفت و سرش را پایین انداخته بود. نسبت به دو زندگی اخیری هم که نورا در آنها دیده بودش، موهایش بلندتر بود. جو گفت مذرعت میخوام که یه مدت ازم خبری نبود. ارتباطی به حرفی که راوی بهت زد نداشت. این روزا به هزار تو حتی دیگه فکرم نمیکنم. فقط توی وضع خوبی نبودم. بعد از مرگ مامان با یه نفر آشنا شدم و بعدش با وضع بدی رابطم اونو قطع کردیم. صرفا دوست نداشتم در با تو یا کسی دیگه ای حرف بزنم فقط میخواستم مست کنم و زیادی روی کردم حسابی واسم دردسر شده بود اما دارم با کمک بقیه درستش میکنم الان چند هفته است که لب به الکول نزدم حتی باشگاه میرم ورزش رو توی باشگاه ورزش تلفیقی شروع کردم وای جو خیلی عذیت شدی به خاطر خراب شدن رابطت و اتفاقای بد دیگه ای که افتاده جو گفت تو تنها کسی هستی که دارم آبجی، صدایش کمی میلرزید. میدونم که قدرتو ندونستم میدونم که توی دوران نوجوانی و بعدش همیشه بهترین برادر دنیا نبودم اما منم مشکلات خودم رو داشتم به خاطر بابا باید همیشه یه جور خاص رفتار می‌کردم باید گرایشم و مخفی می کردمم میدونم بهت سخت گذشته چون به منم سخت گذشته تو تو توی همه چیز کارت خوب بود توی مدرسه شنا موسیقی حتی نمیتونستم باهات رقابت کنم میدونی که بابا چطور آدمی بود واسه همین باید همیشه مطابق همون استانداردی رفتار می کردم که اون برای یه مرد مناسب میدونست جو آه کشی عجیبه، اما احتمالاً هر کدوممون زندگیمون به شکل متفاوتی به یاد داریم، اما ترکم نکن، باشه، ترک کردن گروه موسیقیمون اهمیتی نداره، اما توی زندگی ترکم نکن، نمیتونم تحملش کنم نورا گفت، اگه تو بمونی، منم میمونم باور کن، من قص ندارم جایی برم نورا یاد غمی افتاد که در ساو پاولو با شنیدن خبر اووردوز جو به او دست داده بود و از جو خواست بغلش کند. جو هم آرام و مهربانانه به درخواستش عمل کرد. نورا می توانست گرمای زندگی را در آغوش او حس کند. گفت ممنون که سعی کردی واسه نجاتم توی رودخونه بپری. چی؟ همیشه فکر می کردم اصلا تلش نکردی. ولی کردی، بقیه کشیدن تقب، ممنون جو ناگهان متوجه منظورش شد شاید هم کمی تعجب کرد که نورا چطور در این باره چون در آن لحظات رویش به سمت دیگر رودخانه بود خواهر عزیزم، دوست دارم، اون موقع ها جوون و خام بودیم جو سری بیرون رفت و تا یک ساعت بعد کلید خانه نورا را از صاحب خانهش گرفت و لباسها و گوشی او را از خانه آورد پیامی برای نورا فرستاده بود. ببخشید که دیشب یا امروز صبح جوابت رو ندادم. میخواستم درست حسابی با هم حرف بزنیم. یعنی قشنگ، تزو، و آنتیتز و سنتز بحثو بیاریم بالا. حالش چطوره؟ دلم برای تنگ شده. حدس بزن چی شده؟ تو فکرشم که ماه جوان برگردم انگلیس. واسه همیشه دلم برای تنگ شده دوستم. در ضمن کلی عکس از گوش گوش‌پوش گرفتم که ببینی. بوس بوس بوس. بی اختیار صدایی از خوشحالی از ته گلوی نورا خارج شد. نورا جواب پیام ایزی را داد. برایش جالب بود که می دید فقط اگر کمی طاقت می و می ماند، زندگی خیلی ساده می توانست با اتفاقهایش دیدگاهش را به همه چیز عوض کند. نورا صفحه مؤسسه بین المللی تحقیقات قطبی را در فیسبوک پیدا کرد. پارگرافی در زنی که نورا هم اتاقیش بود، اینگریت دید که آن کنار فرمانده میدانیش پیتر ایستاده بود و از دریل اندازگیری باریکی برای سنجش قطر گخ روی دریا استفاده می کرد. پیوندی هم بود به مقاله ای با عنوان تحقیقات مؤسسه بین المللی تحقیقات قطبی تایید می کند که دهی گذشته گرم ترین دهه در مناطق قطبی بوده. نورا پیوند مقاله را در صفحهش به اشتراک گذاشت. برای آن نظری هم نوشت. به کار فوقلادتون ادامه بدین. تصمیم گرفت زمانی که پولی دستش آمد مقداری به موسسه اهدا کند. موافقت شد که نورا به خانه برود. برادرش برایش اوبر گرفت. درست زمانی که داشتند از پارکینگ بیرون می رفتند. نورا اش را دید که با ماشین وارد پارکینگ بیمارستان می شد. حتما دیر داشت. در این زندگی ماشین دیگری داشت. اش او را ندید. اما نورا لبخندی زد و آرزو کرد که شاد باشد. امیدوار بود در این شیفت عملی جز کسی سفرو به طورش نخورد. شاید نورا روز یک شنبه میرفت و او را در مسابقه نیمه ماراتون تماشا میکرد. شاید هم حتی خودش پا پیش میگذاشت و اش را به قهوه دعوت میکرد. شاید. جو در ماشین برایش تعریف کرد که دنبال کار آزاد آ گفت تو فکرش بودم که مهندس صدا بشم. البته هنوزم مطمئن نیستم. نورا از شنیدن این حرفش خوشحال شد. خب به نظرم انجامش بده. فکر کنم ازش خوشت بیاد. نمیدونم چرا فقط حس میکنم. اینطوری باشه. باشه؟ منظورم اینه که درسته که به اندازی ستاره راک بودن پر سر و صدا نیست ولی امتره. شاید حتی شادتر باشی. حرف نورا چندان معنادار نبود. جو هم کاملا قبولش نکرده بود اما در هر صورت لبخندی زد و آهسته گفت راستش یه استدیو توی همرس هست که دنبال مهندس صدا میگرده فقط پنج دقیقه با خونم فاصله داره میتونم پیاده برم همرس سمیز؟ آره همینه منظور چیه؟ منظورم اینه که اسمش خوبه مهندس صدا توی همرس سمیز به نظرم زندگی شادی میسازی جو به حرفش خندی. باش هنورا، باشه اون باشکایی هم که بهت گفتم دقیقا کنار سدیوه اوه چه خوب مرد به درد بخوریم توی باشگاه دیدی؟ راستش آره یکی هست اسمش ایوانه دکتره توی کلاس ورزشه تلفیقیه ایوان؟ آره کی؟ باید ازش بخوایی باها دوست بشه جو به خیال اینکه دورا فقط درد شوخی میکند خندی هنوز صد درصد مطمئن نیستم که گرایشش به من بخوره میخوره، صد درصد میخوره، صد درصد می در هم ازت خوشش میاد دکتر ایوان لینکفورد، باهاش دوز شو، به هم اعتماد کن، این بهترین کاری میشه که توی عمرت کردی برادرش خندید و ماشین جلوی پلاک آسی بلوار بنکرافت ایستاد از آن که نورا پولی همراهش نداشت، جو کرایه را حساب کرد آقای بانرژی پشت پنجره ی خانهش نشسته بود و کتاب میخواند وقتی پیاده شدند نرا متوجه شد. برادرش با شگفتی به گوشیش خیره شده. چی شده جو؟ جو به زحمت میتوانست حرف بزند. لنگفورد؟ چی؟ دکتر ایوان لنگفورد. حتی خودم هم نمیدونستم فامیلیش لنگفورده ولی خودشه. نورا شانه بالا انداخت اسمش رو بزار حس ششم خواهرانه باهاش دوز شو، دنبالش کن، بهش پیام بده، هر کاری لازمه، خوب، البته یه وقت اکسای ناجور براش نفرستی، اما دارم بهت میگم، همونیه که میخوای، خودشه، اما از کجا اسمش رو میدونستی؟ نراکه میدانست، هیچ جواب مناسبی برای سوال برادرش نخواهد داشت، فقط بازویش را در بازوی او حلقه کرد، گوش کن ببین چی میگم جو؟ یاد ضد فلسفی خانم علم در کتابخانه نیمه شب افتاد لازم نیست زندگی رو درک کنی، فقط باید اون رو زندگی کنی جو به طرف در پلاک آسیوسه در بلوار بنکرافت رفت و نورا نگاهی به تمام خانههای ردیف به ردیف بلوار و لامپها و درختهای زیر آسمان وسیع انداخت احساس کرد ریه هایش با شگفتی نهفته در صرفن وجود داشتن در آن لحظه و مکان پر شدند. گویی نخستین بار بود که تمام اینها را می دید. شاید در یکی از آن خانه ها دیگری هم بود. کسی که در سفر سوم یا هفدهم یا آخر خود بود. نورا هوایشان را داشت. به پلاک سی یک نگاه کرد. چهرگی آقای بنرجی با دیدن نورای سالم و حال شنگول شد. لبخند زد و بی صدا با حرکات لبهایش به نورا گفت ممنون انگار صرف زنده بودن نورا باعث میشد آقای بنرژی قدردان او باشد نورا فرد و صبح کمی پول جور میکرد و به مرکز باغبانی شهر میرفت و بوتهای برای باخچه او می خرید احتمالا گل انگشتانه میگرفت مطمئن بود آقای بنرژی خوشش میآید نورا بوسهای دوستانه برای او فرستاد و گفت نه، من ممنونم آقای بنرژی، به خاطر همه چیز. لاپراندئری بنرژی وسیعتر و چشمانش پر از مهربانی و نگرانی شد و نورا به یاد آورد که اهمیت دادن به دیگری و برای دیگران اهمیت داشتن چه حسی دارد. دنبال برادرش به داخل خانه رفت تا کمی مرتبش کند. در همین حین یک نظر گلهای زنبق توی باغچه آقای بنرژی را دید. پیش از این قدر آن گلها را نمیدانست اما حالا غرق زیبایی رنگ بنفش خاصشان شده بود انگار که بنفش نه فقط یک رنگ بلکه بخشی از یک زبان یا ملودی به قدرتمندی قطع های شپن اما از جنس گل بود و در سکوت شکوه نفسیر زندگی را به جهان نشان میداد. درک اینکه که جایگاهی که انسان برای رسیدن به آن تلاش زیادی کرده با جایی که یک عمر از آن فرار کرده یکیست تأثیر زیادی روی او میگذارد اینکه که بفهمد زندان نه مکان بلکه ذهنیت است خاص ترین کشف نورا هم همین بود که فهمید از بین تمام زندگی هایی که تجربه کرده زندگی اصلیش بزرگترین و شدیدترین تغییرات را شامل می شود همان زندگی آغازین و پایانیش بزرگترین و مهمترین تغییر زندگیش نه به خاطر سروت، موفقیت یا شهرت و نه به خاطر حضورش میان یخچالها و خیرس قطبی بود بزرگترین تغییر زمانی رخ داد که در همان تخت قدیمیش از خواب بیدار شد در همان آپارتمان نمزده و قدیمی، با مبل زهوار در رفته و بوته یک گل یوکای زنگولئی و گلدانهای کجک کاکتوس و قفسه‌های پر از کتاب و کتابچه های یوگا که هرگز بازشان نکرده بود. پیانوی الکتریکی و کتابهایش هنوز همان قدیمی ها بودند. هنوز هم گربه و شغلی نداشت. هنوز هم زندگی پیش رویش ناشناخته و غریب به نظر می رسید. با این حال همه چیز تغییر کرده بود دلیل تغییرش همین بود که نورا دیگر حس نمی کرد فقط برای برطرف کردن آرزوها و رؤیاهای رویاهای دیگرانجاست دیگر حس نمی کرد حس رضایت و خورسندی را فقط باید با بیعیب و نقص ترین دختر، خواهر، شریک زندگی، همسر، مادر، کارمند یا هر چیز دیگری جز انسانی معمولی بودن به دست می آورد. انسانی عادی که فقط اهداف خودش را دنبال می کند و به خودش جواب می دهد. یک دلیل دیگرش این بود که نورا تا پای مرگ رفته و برگشته و حالا زنده بود. این هم تصمیم خودش بود. تصمیمی برای زنده ماندن و زندگی کردن. چون وسعت زندگی را لمس و درک کرده بود و درون آن وسعت تمام احتمالات ممکن را دیده بود. احتمالاتی از آنچه می توانست باشد تا آنچه می توانست احساس کند درک کرده بود که در زندگی میزان و آهنگی متفاوت از آنچه تا به حال می دانست وجود دارد و در وجودش جز انسانی نسبتا افسرده و گهگاه ناامید انسان دیگری هم هست این به نورا امید و حتی احساس کاملا درونی قدرشناسی شناسی می قدردان از اینکه آنجا بود و میدانست که میتواند از تماشای آسمان زیبا و فیلم کمدی سطحی رایان بیلی و گوش دادن به موسیقی، صدای دیگران و زربان قلب خودش لذت ببرد. مهمترین دلیل متفاوت بودنش نسبت به قبل هم این بود که کتاب سنگین و دردناک حسرتهایش سوخته و خاکستر شده بود. سلام نورا منم دوریان، لرا که پیش از تماس دوریان داشت آگهی تر و تمیزی برای آموزش پیانو درست میکرد. از شنیدن صدای او حسابی هیجان زده شد. سلام دوریان، واقعا بابت اینکه اون روز نتونستم کلاس لعو رو برگزار کنم متاسفم. گذشته ها گذشته. لرا نفس نفس ادامه داد. خوب، همه ی ماجرار رو نمیگم اما بذارین طور بگم که دیگه هرگز توی اون موقعیت قرار نمیگیرم قول میدم که در آینده هر زمانی که خواستی وسیله او کلاس پیانو بذاری سر وقت حاضر بشم. ناامیدت نمی‌کنم درکم می‌کنم اگه دیگه دوست نداشته باشی من معلم پیانوی لئو باشم اما میخوام اینو بدونی که لئو استعداد زیادی داره درکش از پیانو بالاست ممکنه بعداً حتی بهش شغلش شاید حتی به دانشگاه سلطنتی موسیقی راه پیدا کنه بنابراین میخوام این رو بدونی که حتی اگه کلاساش رو با من ادامه نمیده یه جای دیگه کلاس بره و ادامه بده همین دوریگن مدتی طولانی سکوت کرد فقط صدای خشخش برفک مانند تلفن به گوش میرسید نورا عزیزم اشکالی نداره لازم نیست توضیح بدی راستش اون روز دو توی شهر بودیم داشتم واسهش شوینده صورت میخریدم که یهو جلوی فروشگاه بوتس گفت کلاس پیانو رو ادامه میدم دیگه مگه نه پس میخوای هفته دیگه دوباره شروع کنیم؟ واقعا؟ عالیه آره پس هفته دیگه میبینمت نورا به محض اینکه تماسشان تمام شد پشت پیانو نشست و آهنگی را زد که پیش از آن هرگز نزده بود از آهنگ خوشش آمد و به خودش گفت باید آن را به خاطر بسپارد و چند کلمه برایش بنویسد شاید حتی از آن یک آهنگ درست و حسابی بسازد و در اینترنت پخش کند شاید باز هم آهنگ بسازد یا شاید پولش را جمع کند و برای تحصیل در مقطع ارشد درخواست پذیرش دهد شاید هم هر دوی این کارها را انجام دهد از کجا معلوم؟ در حالی که آهنگ مینواخت سر برگرداند و مجلش را دید همان مجله که جو برایش خریده بود که روی صفحه با عکس آتشفشان کاکتوای اندونزی باز بود دوگانگی وجودی آتشفشان این است که هم نماد نابودی؟ و هم نماد وقتی مواد مزابشان آرام بگیرد و سرد شود به شکل سنگ در می آید و در گذر زمان خورد و به خاکی قنی و حاصل خیز تبدیل می شود نورا به این نتیجه رسید که سیاه چاله نیست آتش فشان است و درست مثل آتش فشان نمی تواند از حقیقت وجودش فرار کند باید می ماند و آن سرزمین بایر را آباد می کرد می توانست درون خود جنگلی سرسبز بکارد. آنطور که بایان میابد خانم علم خیلی مسنتر از زمانی به نظر میرسید که نورا در کتابخانه نیمه شب او را دیده بود موهایش که قبلا خاکستری بود حالا یک دست سفید شده صورتش خسته و پرچروک و دستهایش پر از لکه های ریس بودند اما در شطرنج، درست به اندازه همان دورانی که در کتابخانه مدرسه هیزل دین کار میکرد ماهر بود خانیگ بلوط، شطرنج هم داشت اما مجبور شده بودند اول حسابی خاکش را بت کنند خانم علم به نورا گفت اینجا هیچکس شطرنج بلد نیست خیلی خوشحال شدم که اومدی دیدنم. واقعا قفل گیر کننده بود خوب اگه دوست داشته باشین هر روز میتونم بیام خانم علم لوییس صدام کن لوئیس مگه کار نداری نورا لبخند. زن. با اینکه فقط بیست و چهار ساعت پیش بود که از نیل خواست آگهی تبلیغاتیش را در مغازه‌ی تئوری ریسمان به دیوار بزند. تا الان تعداد زیادی هنر با او تماس گرفته بودند. پیانو یاد میدم. هر سشم به هم توی پناهگاه بی داوطلب ها میشم. اما همیشه دستکم یه ساعت میتونم وقت بذارم و بیام اینجا. راستشو بخوام بگم منم کسی رو ندارم که باهاش شطرنج بازی کنم. لبخندی خسته روی صورت خانم علم شکل گرفت. خوب اینجوری که عالی میشه. از پنجره کوچک اتاقش به بیرون خیره شد. نورا هم خط نگاهش را دنبال کرد. مرد و سگی پشت پنجره بودند که نورا میشناختشان. دیلن داشت سالی سگ بولماستیف را می گردند همون سگ ترسویی که کلی جای سوختگی سیگار داشت و از نورا خوشش آمده بود. نورا با حواظ پرتی به این فکر کرد که صاحب اجازه می دهد بیاورد یا نه. به هر حال گربه را که اجازه داده بود. البته نورا باید صبر می کرد تا اول پول اجارهش را جور کند و بعد از او بپرسد. خانم علم گفت اینجا بودن، گاهی باعث اسم آدم احساس تنهایی کنه. احساس می بازی تموم شده. مثل محره شاهی که تنهایی روی صفحه باقی مونده. میدونی، نمیدونم چطور منو یادته اما خارج از مدرسه من هیچ وقت آدم مکس کرد خیلی هارو ناامید کردم آدم سخت گیری بودم کارایی کردم که ازشون پشیمونم همسر بدی بودم مادر خیلی خوبی هم نبودم بیشتر مردم دیگه بیخیال من شدم منم نمیتونم مقصر بدونمشون خوب با من که مهربون بودین خانم لویس وقتی هم که مشکل داشتم همیشه میدونستین چطوری آرومم کنین خانم علم نفسهایش را آرام کرد ممنونم نورا دیگه روی صفحه شطرنج تنها نیستین یه سرباز بهتون ملحق شده تو هیچ وقت یه سرباز ساده نبودی حرکتش را انجام داد مهره فیل را جلو برد و در موقعیت خوبی گذاشت. لبخندی کوچک گوشه های دهانش را به بالا خم کرد. نورا نگاهی به صفحه انداخت و گفت این بازی رو شما میبرین. چشمان خانم علم با شور زندگانی برق زدند. خوب، زیبایی این بازی همینه دیگه. مگه نه، هیچ وقت نمیشه فهمید چطوری تموم میشه. نورا لبخند زد. به تمام مهرههایی که برایش باقی مانده بود نگاهی انداخت و به حرکت بعدیش فکر کرد پایان